سهشنبه شش آگست 2013 صبح خیلی کم خوابیدم تمام شب دراز کشیده بیدار بودم و به این موضوع فکر میکردم هی hey, توی ذهنم دور میزد و میچرخید یعنی این حماقته کله شقیه خطرناکه من نمیدونم چیکار کردم دیروز صبح قرار ملاقات گرفتم برای دیدن دکتر کمال آبدایک زنگ زدم به مطب با یه منشی صحبت کردم و گفتم اسمم رو تو نوبت مراهات بنویسه شاید خیال میکنم اما حس کردم انگار منشی تعجب کرد گفت اون میتونه منو امروز ساعت چار و نیم ببینه پینزودی؟ قلبم ریخ پایین دهنم خوش شد گفتم باشه خوبه خوبه هزینه جلسه هفتاد و پنج پونده اون سیصد پوندی که از مادرم گرفتم همین روزاست که تبه کشه از وقتی که وقت ملاقات گرفتم نمیتونم به هیچ چیز دیگه فکر کنم. من ترسیدم اما هیجان زدم هستم چون همه چی اینجوری شروع شد که یه لحظه از پنجره قطار چشمم به اون مرد افتاد و جریان زندگیم تغییر کرد. از مسیر معمولی زندگیم خارج شدم. یه لحظه دیدمش که مگانو بوسید و همه چی عوض شد. باید ببینمش. باید یه کاری کنم چون پلیس فقط چسبیده به اسکات. دیروز دوباره برای بازجویی نگاش داشتن. خبرها تایید نشده از البته یه فیلم کوتاهی توی اینترنت هست اسکات داره میره ایسکای پلیس مادرش کنارشه. کراواتش اونقدر سفت بسته شده که انگار الان خفشه. همه مشغول گمانه‌زنی روزنامه روزنامه‌ها میگن که پلیس محافظ کارانه عمل میکنه و نمیتونه کسی دیگه ای رو شتاب زده دستگیر کنه. حرف از تحقیق سنبله کاری شده است. اظهار نظرهایی که میگه شاید نیاز به تغییر در مجموعه پرسنل پلیس باشه. تو اینترنت راجب اسکات حرفای ترسناکی زده شده. نظریهای خشن و منزجرکننده. های ازش نشون داده میشه. یه فیلم ازش هست با چیزای پر از عشق، ماله وقتی که داشته اولین درخواستش رو برای پیدا کردن مگان میگفته. بعدش عکسهایی از آدمکشا میاد روی تصویر. در حال خخخ که ظاهراً به خاطر سرنوشت شومی که نصیب افراد مورد علاقه شون کردن به هم ریختن. این موهشه. غیرانسانیه. من فقط میتونم دعا کنم که اون هرگز این چرندیات نبینه. قلبش میشکنه با دیدن این چیزا. ممکنه کار احمقانه و غیر معقولی باشه، اما من می‌خوام کمال‌آبدای و ببینم. چون اسکات هیچ شباهتی با آدمای شایع نداره. من دیدمش. من اونقدر نزدیکش بودم که لمسش کنم. میدونم اون چجوریه. اون قاتل نیست. اصر وقتی از بلای اسکات کلی بالا میرم، پاهام هنوز می‌لرزن. چند ساعت همین جور بی باید تاثیر آدرنالین باشه قلبم یه لحظه از تپش نمیمونه. قطار پر پره، هیچ شانسی نیست که جای برای نشستم پیدا کنم این مثل قطار یوستان نیست برای همین سرپا میستم وسط یه واگن عین قفس میمونه، مثل خرم توی جبه همه چسبیدیم به هم سعی میکنم آروم نفس بکشم چشامو دوختم به زمین به نوک کفشم فقط سعی می کنم یه رو که لمس میشه بگیرمش شادی، ترس، پریشانی و گناه، بیشتر حس گناه، این چیزی نبود که انتظارش رو داشتم. تا وقت هست با خودم تمرین میکنم، باید بتونم به خودم حرفی بزنم تا کاملا وحشت و ترس بهم هم بشه چیزی که حسابی ازش بترسم. خودم رو متقاید میکنم نوع نگاه کردنش طوریه که انگار از قضیه باخبره و بهم هم به عنوان یه تهدید نگاه میکنه. میترسم نتونم جل خودمو بگیرم و یه چیزی بگم که نباید یا مثلا اسم مگان از دهنم بپره آره تو اتاق انتظار مطب دکترم خسته و آروم با منشی میانسال که ریز مشخصاتمو میگیره بدونه که به نگاه کنه صحبت میکنم میشینم و یه نسخه از مجله وگ و برمیدارم مجله در اصل لرزش دستام تکون میخوره سعی میکنم ذهنم و متمرکز کنم رو وظیفهای که پیش رو دارم در حالی که همو لحظه سعی میکنم مثل یه بیماره دیگه خسته به نظر بیام تا جلب توجه نکرده باشم. دو نفره دیگه هم اینجان. یه مرد حدوداً 20 ساله که داره از توی گوشیش چیزی میخونه و یه زن مسن‌تر که وار زل زده به پاهاش. یه بارم سرشو بلند نمیکنه، حتی وقت منشی اسمشو صدا میزنه، فقط بلعمش رو یه راس رایشو میره و میره. معلومه که میدونه کجا باید بره. پنج دقیقه است که منتظرم، بیشتر ده, ده دقیقه. میتونم نفسهای بریده بوریدم و حس کنم. اتاق انتظار گرم و خفص. انگار نمیتونم به اندازه کافی اکسیژن توی ریه بکشم. الانه که از حال برم. بعدش یه در باز میشه و یه مردی میاد بیرون. و من که قبلا دیده بودمش میفهمم که خودشه. این حس شبیه حس اولین باری که اسکاتو دیدم نیست. در مورد اون اصلا اینجوری نبود. مثل یه سایه از پشت سر اون ز با دستاش بهم اشاره میکنه. خانم واتسون تا سرمو بلند میکنم نگاه هم باهاش تلاغی میکنه و عبور رو روی تمام مهرهای پشتم حس میکنم. باش دست میدم. دستش گرم و خشک و گنده است. تمام دستم در برگرفته. میگه بفرمایی. اشاره میکنه تا دنبالش برم سمت مطب و منم میرم. احساس زف میکنم. سرگیجه دارم. من داشتم از رو قدم برمی داشتم. اون تمام این کارا رو کرده بود. نشسته بود روبروی اون روی صندلی که به من گفروش بشینم. دکتر احتمالا دستش رو درست میسه حالا زیر چونش هم گذاشته. احتمالا همینجوری به مگان سر تکون داده و بهش گفته. خب امروز میخوایی راجع به چی صحبت کنیم؟ همه چیزش گرمه. دستاش. وقتی باش دست دادم. چشاش. لحن صداش. من تو صورتش دنبال سر نخ میگردم. دنبال علایمی از طبحکاری حیوان سفتانه کسی که سر مگان اونجوری خورد کرده. دنبال یه نظر دیدن مهاجر فراری روان پریشی که خونوادش رو از دست داده. نمیتونم چیزی پیدا کنم و در همین حال خودم رو فراموش میکنم. ترسم و ازش فراموش میکنم و نشستم اینجا. دیگه مسترب نیستم. آب به و به سختی گرد میدم و سعی میکنم یادم بیاد که چی باید بگم و میگم بهش میگم که چهار سال درگیر الکل شدم میگم الکلی بودن باعث شده از شغل و ازدواج و سلامتیم هزینه کنم و میگم میترسم سلامت عقلم هم از دست بدم هیچی یادم نمیاد من تو خله کاملمو نمیتونم جای که بودم یا کاریو که کردم به یاد بیارم گای خودم از کارایی که کردم و حرفای وحشتناکی که زدم و یادم نیستن شاخ در میارم و اگه اگه یکی بهم به بگه چی کار کردم حتی احساس نمیکنم من این کارو کرده باشم یا این حرف رو زده باشم انگار من نبودم که همچین کاری رو کرده. به عهده گرفتن چیزی که یادت نیست خیلی سخته. برای همین اونقدره که باید از کاری که کردم احساس بدی پیدا نمی‌کنم. احساس بدی دارم برای کاری که کردم و نمی دونم چیه. برای عملی که ازم دور شده. انگار به خودم متعلق نیستم اینا کار یکی دیگه بوده. تمام این چیزهایی که از دهنم بیرون اومد همش درسته. من درست همون چند دقیقه اولی که پیشش بودم خودمو براش فاش کردم. خیلی آماده بودم که اینا رو بهش بگم، همش منتظر بودم به کسی بگم، اما نهایت به اون میگفتم، اون گوش کرد، چشمایی کهربایی روشنش رو منه، دستاشو گذاشته روی هم، بی حرکت، نه به بر اتاق نگاه میکنه، نه یادداشتی برم. برمیداره، فقط گوش میکنه، بالاخره یه ذره سرشا تکمده و میگه، شما میخواین مسئولیت کاری رو که انجام دادین به عهده بگیرین و، انجام این براتون مشکله، انجام چیزی که یادتون نمیاد و احساس قابل توجیه برای فراموشیش ندارین، درسته؟ بله، همینطور کاملا درسته. بنابراین، آدم چجور مسئولیتی ممکنه داشته باشه؟ شما میتونین عذرخواهی کنین و حتی اگه نتونین تخلفی رو که مرتکب شدین به یاد بیارین، به معنای این نیست که اصخایی شما و احساس بعد از اصخاییتون صادقانه نیست. اما من میخوام اینو حس کنم میخوام احساس بدتری حرف عجیبی زدم من این همه وقت فکر کرده بودم که چی بگم به اندازه کافی احساس بدی ندارم من میدونم که مسئول چه چیزهایی هستم تمام کارهای وحشتناکیو و که کردم میدونم حتی اگه جزئیاتشون رو یادم نیاد اما فاصله گذاری بین خودم و اینجور کارام رو احساس میکنم من اون کارا رو احساس میکنم میدونم یه جایی خاطرش توی ذهنم از بین رفته شما فکر میکنید باید احساس بدتری داشته باشین از کاری که کردین اینکه شما احساس بدی برای اشتباهتون دارین کافی نیست بله کمال سرش توم میده ریچل شما به من گفتین که ازدواجتون منجر به شکست شده و شغلتون رو از دست دادین فکر نمیکنید این مجازات کافی باشه موافق حرفش نیستم. برای همین سرمو تکم میدم. اون یکم به سندلیش تکیه میده. من فکر میکنم شاید بهتر باشه خیلی به خودت سخت نگیری. نمیگیرم. خوبه؟ خیلی خوبه. میتونیم؟ یه ذره برگردیم اقاب؟ به وقتی که مشکل شروع شد گفتین این موضوع به چهار سال قبل ها میشه از اون دوران برای من بگین؟ من مقاومت میکنم. کاملا با گرمای صداش آروم نشدم. با حالت مهربونی چشاش. من کاملا نامید نشدم. نمیخوام بگفتن تمام حقیقت شروع کنم. نمیخوام بگم چقدر برای یه بچه انتظار کشیدم. بهش میگم که ازدواجم به شکست مندر شد و من نامید شدم و مدام نوشیدم و بعد همه از دست دادم. خب. ازدواج شما به شکست منجر شد. پس. شما شوهرتون رو ترک کردین یا اون شما رو. یا جفتتون هم رو؟ اون با کسی رابطه داشت. زن دیگه یا میدید و عشقش رو به اون ابراز میکرد. سر تکمیده. منتظر تا ادامه بدم. هرچند این عیبه اون نبود. این من بود. چرا اینو میگین؟ خب میخاری من از قبل شروع شده بود. بنابراین رابطه خارج از ازدواج شوهر شما تیر خلاص نبود. نه من قبل از این شروع کرده بودم نوشخالی منو ازش دور کرد به خاطر همین بود که ازم دست کشید کمال منتظر میمونه وادرم نمیکنه ادامه بدم فقط میذاره اینجا بشینم منتظره تا این کلمات رو با صدای بلند ادا کنم برای همین دیگه عشقش رو به من سست داد از خودم متنفرم که جلوی اون گریم گرفته نمیفهمم چرا نمیتونم خودم رو کنم نباید راجع به چیزای واقعی حرف می زدم باید با مشکلات ساختگی میرفتم اونجا با یه شخصیت خیالی باید بهتر آماده می شدم. از خودم بیزارم که وقتی نگاش میکنم باورش دارم چون طوری بهم نگاه میکنه که انگار می دونه. نه اینکه انگار داره بهم هم میکنه. من رو می کنه انگار منو میفهمه انگار انگار من همون کسی هم که باید بهش کمک کنه خب پس ریجر نوشیدنت قبل از بهم خوردن ازدواجتون شروع شده بود فکر میکنی بتونی به موردی اساسی اشاره کنی منظورم اینه که هیچ کس نمیتونه برای بعضی فقط یه لغزش کافیه تا غرق افسردگی بشن یا همون گام گذاشتن به مرحله اعتیاد به چیزی در مورد شما چیز خاصی هست؟ یه سوگ مثلا یا از دست دادن کسی؟ من سررتکن میدم که یعنی نه و شونه بالا می ندام نمی خواهم بهش بگم این رو هیچ وقت بهش نمیگم اون چند دقیقه منتظر میشه و بعد نگاه سریع به ساعت روی میزش میندازه ما دوباره همدیگر می بینیم احتمالا و بعدش لبخند میزنه و اینجاست که من یخ میکنم همه چیزش گرمه دستاش چه سهاش همه چیزش جز لبخندش وقتی که دندوناشو نشون میده آدم میتونه قاتل بودن رو تو وجودش ببینه. چکم هم میشه؟ دربان هم دوباره میره بالا. از دفترش میام بیرون بدونه اینکه با دست گندش دست بدم. نمیتونم لمسش کنم. من فهمیدم. کاریو که میخواستم کردم. میتونم ببینم مگان توی اون چی دیده. نه فقط اینکه اون به طرز میخکوب کننده خوشقیافه است بلکه آروم و قوت قلب میده. یه مهربونی صبورانه ازش تراوش میکنه. مثل کسی که بیگناه یه قابل اعتمادی این که راحت نمیتونی فکر کنی مزاحمت میشه. ممکنیست فکر کنی که زیر این همه آرامشش یه گرگ خوابیده. من اینو فهمیدم. تقریبا برای یه ساعت اونجا بودم. من خودم رو پیشش فاش کردم. فراموش کردم اون کیه؟ من به اسکات خیانت کردم به مگان. خاطر همین احساس گناه میکنم. و بیشتر احساس کنم به خاطر اینه که میخوام دوباره برگردم بیشش. هفته 2013 صبح. باز دوباره خواب دیدم. خواب جایی رو که من اونجا کار اشتباهی انجام دادم. جایی که کسی اونجا ضد منه و طرف تامو گرفته. جایی که من نمیتونم توضیح بدم یا حتی اصخای کارم چون نمیدونم چیکار کردم. در حالتی بین خواب و بیداری به یه بحث واقعی فکر میکنم. مدتها قبل، چهار سال قبل، بعد از اولین بار و تنها باری که باروری لوله آزمایش با عدم موفقیت روبرو شد. وقتی میخواستم دوباره سعی کنم، تام بهم به گفت نباید پول خرج کنیم و من جوابی نداشتم بهش بدم. میدونستم ما پول نداریم. ما یه وام بزرگ مسکن گرفته بودیم. اون به خاطر معاملات تجاری بعد یه مقدار بدهی بالا آورده بود و پدرش با گیر انداختن اون توی پیگرد قانونی مسخرش کرده بود. من فقط باید با این موضوع سر کلم زدم. من فقط باید امیدم حفظ میکردم که یه روز پول دستم و میاد و در ضمن باید اشک‌های داغی رو پس میزدم که مدام صورتمو خیس میکرد. هر بار که چشمم به غریبه‌ای باشه شکم برامده میافتاد یا هر بار که میشنیدم یکی خبر خوشحال کننده ای داره. دو ماه بعد که فهمیدیم باروری لوله آزمایش ناموفق بوده، اون به هم قضیه سفرش رو گفت. چهار شب وگاس برای تماشای مسابقه بزرگ و باید زودم می‌رفت. فقط اون و دو تا از رفیقای قدیمیش کسایی که من هرگز ندیده بودمشون این بهاییه یه تختیر بود میدونم چون من رسیده پرواز و رزرو اتاق رو تو پوشه ایمیلاش دیدم نمیدونم قیمت ببللیطش چقدر بود اما نمیتونم تصور کنم که ارزون بوده باشه درسته که برای تداره که باروری توی لوله آزمایش کافی نبود اما برای شروعش شاید ما دعوای سختی کردیم جزئیاتش یادم نمیاد چون تمام بعد از ظهر بودم با این کار خودم و برای مواجهه باش در مورد این موضوع آماده می کردم در حال اقای کردن به خودم برای مواجهه با اون راجع به این موضوع برای همین وقتی مطرحش کردم به بدترین شکل ممکن بود. من سردی روز بعد و خوب یادمه خودداریش از حرف زدم با هم یادمه با لحن نامیدانه خونسایی بهش گفتم چیکار کردم و گفتم چقدر شرمندم که قاب عکس مراسم ازدواجمون رو و اینکه اونقدر سرش جیغ زدم چون خیلی احمق بودم به خاطر اینکه اونو شوهر بی آر و بی مصرفی صداش زدم و بهش گفتم ریغماسی. یه ادم چقدر از خودم متنفر بودم چقدر از خودم بیزار بودم اون روز. من اشتباه کردم. البته که اشتباه کرده بودم که اون حرفای بدو بیزه زده بودم. اما الان میدونم که عصبانی شدنم عاقلانه نبود اما حق داشتم. همه چیز برای عصبانی شدن مهیا بود نه؟ ما سعی داشتیم بچه داشته باشیم. پس نباید فداکاری میکردیم؟ اگه لازم میشد باید دست و پامونو میبریدیم اون نمیتونست یه آخر هفته نروه گاز. من رو تخت دراز کشیدم به این چیزا فکر میکنم و بعدش بلند میشم و تصمیم میگیرم برم یه قدمی بزنم چون اگه کاری نکنم بلند میشم میرم گوشه یه فروشگاه از یه شمه ننوشیدم و میتونم جنگیدم به خودم احساس کنم یه ذره وزوز میکنه و این احساس مبهم همیشگی رو که انگار کاری که شده از به میره و باعث میشه با یه شرمی الان دورش بندازم آشوری واقعا جای خوبیه برای قدم زدن اونجا فقط فروشگاه هست و حومشه حتی یه پارک پارک پرت هم نداره مستقیم میرم مرکز شهر که وقتی کسی دیگه اون اطراف نباشه جای بدی هم نیست. برای خر کردن خودت با این فکر تو داری میری جایی آره، حوقه خوبیه فقط یه نختر در نظر بگیر و برو طرفش من کلیسا را انتخاب کردم که بالای جاده پلیزانسه و دو مایلی از خونه کتی فاصله داره من توی انجمن الکلایی ناشناس اونجا بودم نرفتم جایی که تو محل باشه چون نمیخواستم تو کوچه خیابون سوپرمارکت یا قطار کسی رو ببینم وقتی برسم کلیسا یه چرخی اون اطراف میزنم و برمیگردم دوره خونه قدمام بلند و مصممه مثل زنی که یا عالم کار اخترو سرش و یا عالم جو باید بره خیلی <تصفيق> معمولی به مردمی که عبور میکنن نگاه میکنم. دو تا مرد در حال دویدن با کوله پشتی و در حال تمرین ماراتون در مسیر رفتن به سر کارشون زن جوونی با دامنه مشکی و کفش وردشی سفید در حالی که کیفش روی بری انداخته و من می‌دونم که اونها هر کدوم چیزی برای مخفی کردن داره یعنی میخوان از نوشیدن دست بکشن که همین یا دارم به قاطلی که دیروز باش مراغات کردم فکر میکنن. یکی از اونا در حال نقشه کشیدنی که دوباره اونو ببینه. من معمولی نیستم. وقتی به این نتیجه میرستم که رسیدم نزدیک خونه. آدم رفت به چی فکر میکردم. به اینکه که این بار که رفتم پیش کمال کاری کنم که واقعا نتیجه داشته باشه. مثلا خوبه که شوهای بگردم. البته اگه اتفاقی از اتاق بیرون. اینکه خوبه یه کاری کنم تو بنومش توی دام با گفتن چیزی که فاش کننده باشه و اینجوری بکشامش به قلم روی خطرناکن احتمالش هست که اون تو خیلی چیز از من باهوش در باشه احتمالش هست که دستمو بخونه با این همه اون میدونه که اسمش توی روزنامه ها بوده و احتمالا حواسش هست که کسایی ممکنه بخوا از کاری سر در بیارن یا اطلاعاتی ازش بکشن بیرون این چیزی که من بهش فکر می در حالی که سرم اندختم پایین رو نگاه همو به سنگ پیاده رو وقتی اجله فروشگاه کوچک لاندیس که سمت راستم به میشم سعی میکنم بهش نگاه نکنم ممکنه ممکن هم کنه اما از گوشه چشم اسمشو میبینم سرمو بلند میکنم و اون اینجاست با حروف بزرگ رو نیمقطع روزنامه آیا مگان قاتل بود قاتل بچه